فصل دهم ده راه پرپیچ و خم بالای شاخه های زیتون برای کوزیما راهی راحت و یک نواخت بود زیتون درخت میهما نوازی است که گرچه تنی زبر و خشنی دارد برای کسی که روی شاخه های آن بنشیند یا بگذرد خوشایند است در عوض شاخه های ستبر آن اندک است و انواع گوناگونی ندارد انجیر درختی است که باید همواره موازه به شاخه هایش باشی که مبادا بشکند. اما تا بخواهی جا برای گشت و گذار دارد. کوزیمو زیر تاقی برک های انجیر مینشست. گذر خورشید را از لای مویرک های تماشا می کرد. میوه های سبز و گرد را می‌دید که اندک اندک درشت می‌شد. بوی شیری را که از دم میوه به درونش سرازیر بود می‌شنید. انجیر درختی است که با آدم یکی می شود. شیرش و وزوز زنبورهایش با جان آدم می‌آمیزد. چیزی نمیگذشت که کزیمو خود را نیز انجیر حس می کرد. دست پاچه و بالای انجیر، بالای توت، خوش جایی است. افسوس که درختانی کمیابند. همین را درباره گردو می توان گفت. شاید هیچ درختی به اندازه گردو درخت نیست. با چه نیرو و درخت بودن خودش را به رخ می کشد. با چه پشتکاری قد برمی و سخت و سنگین می شود. پشتکاری که در برگ برگشت پیداست. است. هر بار که گشت و گذار کازیمو را در میان شاخسار بی گردویی که میدیدم، که پنداری در اتاقهای کاخی چند اشکو قدم میزد، دلم میخواست خواست من همچون او بروم آن بالا زندگی کنم. کزیما از گشتن میان شاخ و برگ های موج در موج بلوت خوشش می آمد. شیار شیار آن را دوست داشت و هر بار که از چیزی نگران بود، با نوک انگشتانش و رقه های پوک تنی آن را می کند. از این کار قصد بدی نداشت، پنداری می خواست در کار همیشگی نوسازی تنه به درخت کمک کند. به همین گونه پوسته های سفید چنار را می کند و لایه های کهنه تلای پوسیده زیر آنها را آ تنه ناروان را نیز دوست می داشت. تنه خمیده ای که از هر گره ای آن ترکه های نرمی با انبوه برگ های دندانه دندانه و میوه های خشک کاغذین بیرون می زند. اما رفت و آمد بر فراز ناروان کار ساده ای نیست. شاخه هایش آنچنان نازک و در هم پیچیده است که راهی برای گذر نمی گذارد. از درختان جنگل، کوزیمو، آلش و فونج را بیشتر دوست داشت. اشکوبه های کاج تنگ و نازوکن باشته از سوزن است. نه بر می توان نشست و نه از آن می توان گذشت. و شاهبلوط با برگهای های پرخارش با پوست زبر و تنه خشن و شاخه های انگار برای همین ساخته شده است که آدمی را از خود براند. این دوستی با درختان و بازشناسی تفاوتهایشان پس از مدتی شکل گرفت. یا شاید بتوان گفت که کوزیما رفته رفته به آن پی برد. اما از همان نخستین روزها این دوستی و باس شناخت بر او چیره میشد و حالت قریزهی را به خود میگرفت. برای او جهان دگرگون شده بود. جهانی بود پر از پلهای باریک و ای که میان زمین و آسمان کشیده شده بود. جهان تنه ها و شاخه های از پوسته و گره و چین و شیار. جهان ها کند از سبز سبزرنگی که از پس پرده های برگ میتابید و با هر وزش نسیم و هر دگرگونی جنس و زخامت برگ ها رنگ آن تغییر می و هنگامی که درخت خم می شد چون پرده درخشانی محج میزد. دنیای ما زیر زمین آن جهان بود. تنها سای روشن گنگی از آن را می دیدیم و هیچ چیز از آنچه را که او هر شب حس می در درن نمی کار پیگیر چوب که با تک تک یاخته هایش دایره نشاندهنده امر درخت را بزرگتر و بزرگتر می کند. تکه های کپک نمناک که با وزش نسیم شمال پهند تر لرزش پرندگان خفته ای که سر خود را در نرم ترین گوشه بال خود فرو می کند. بیداری کرم در درون پیله و سربراوردن جوجه زاق از تخم. در سکوت شب، لحظی فرا میرسد رسد که دستی از آواهای ریز و گنگ چون قباری به گوش می نشیند. قار قاری و زقزقی و شرشور آبی و سایش گذرایی در لابلای علفها و آوای پایی روی خاک و سنگ ریزه و جیر جیر زنجره ها که بر همه آواهای دیگر چیره می شود. آواها همه در هم می زند و گوش همچنان هر صدای تازهی را در می آبند. گونه که هنگام دست کشیدن بر کلافی از نخ پشمی در میابی که هر نخ از تارهایی باز هم نازکتر درست شده است. قورباغه‌ها پیاپی می و این رنگ یک نواخت و پیگیر آن هم همه پیوسته شبانه را برهم نمی‌زند. همان همانگونه که کورسوی پیوسته ستارگان روشنایی شب را دگرگون نمی اما همین که باد برخی زد و بگذرد همه آواها به حالتی تازه در می آید و از سر گرفته می شود. تنها تنینی از قررشی یا هم همه در شرفهای گوش به جا می ماند. و این آوای دریاست. زمستان آمد. کزیمو بالا بلندی از پوست چند خرگوش و روباه و سمور برای خود دوخت. کلاه پوست گربه وحشی را همچنان برسر داشت. همچنین شلواری از پشم بز برای خود دوخت که خشک و زانوهای آن از چرم بود. در باری کفش سرانجام به این نتیجه رسید که برای بالای درختان هیچ چیز بهتر از پاپوش نرم پوستی نیست و برای خود چنین پاپوشی ساخت که فکر می از پوسته شقاره بود. بدین گونه خود را از سرمادر امان می‌داشت. داشت. گفتنیست که در آن زمان زمستان ها ملایم بود. هنوز دچار سرماهایی نشده بودیم که گفته می شد ناپل اون آنها را از مقاکشان در روسیه بیرون کشیده است و به دنبال او تا اروپا آمدند. با این همه شبهای زمستانی در هوای آزاد چندان خوشایند نبود کزیما شب را درون یک کیسه پوستی میگذراند چادر و کلبه ی بالای درخت را ترک کرده بود و برای خوابیدن کیسه پوستی را به کار میگرفت که پشمش روبه درون بود و به شاخهای بسته شده بود تا سر به درون کیسه فرو می رفت. دست و پایش را چون کودکی جمع می کرد و می خوابید. همین که صدای مشکوکی به گوش می رسید، سر پوستین پوش کازیمو از چاک کیسه بیرون می آمد. سپس نوک تفنگش بیرون می زد و چشمانه از هم گشودش دیده می شود. در آن زمان می که چشمانش همانند چشمان گربه و جغد در شب می درخشد. اما خود من هرگز چنین چیزی ندیدم. صبح، همزمان با آوازه کرک خوزیمو بیدار میشد و مشتهایش را میدیدی که از کیسه پوستی بیرون میزد. دستهایش بالا میرفت بازوانش از هم باز میشد و زمان درازی به همان حال می ماند تا دیگر از کوفتگی اثری نماند. سپس چهرش دیده میشد که خمیازه میکشید. آنگاه سینهش را میدیدی که تفنگی و کیسه باروتی بر آن آویخته بود و سرانجام پاهای پاهای همانیش بیرون می آمد. از بس به حالت خمیده روی درختان راه رفته یا کند زده بود، پاهایش رفته رفته حالت کمانی به خود می گرفت. پاهایش را بیرون می‌کشید و دراز می کرد. پشتش را تکان میداد سر خود را کمی می و خوش و حال روز تازهی را آغاز می کرد. پیش از هر کار به سرچشمه می‌رفت برای خودش چشم ای داشت که به دست خود یا بهتر بگویم به کمک طبیعت ساخته بود. نزدیک جایی که بستر جویبار ناگهان گد میافتاد و آبشاری پدید میآورد بلوط بلندی شاخه گسترده بود كزیمو شاخه سپیداری به درازای کمابیش ابیش دو متر را گرفته و از آن ناودانی ساخته و با این وسیله آب و آبشار را به شاخه بلوت رسانده بود هم می توانست آب بنوشد و هم خود را بشوید شکی نیست که خودش را می شست. این را بارها به چشم خودم دیدم البته نه بسیار و نه هر روز اما هرچه بود خودش را می شست و صابون هم داشت. حتی گاهی هوس می کرد و لباسهایش را هم می شست. لاوکی را برای این کار بالای بلوت برده بود. لباسهای شسته را روی ریسمانی پهن می کرد که به دو شاخه بسته بود. خلاصه این که کوزیما بالای درختان همه کار می کرد. حتی راهی برای کباب کردن گوشت شکار پیدا کرده بود. میوه کاجی را با سنگ آتش زنه روشن می کرد. و آن را در اجاقی سنگی میانداخت که من روی زمین برایش درست کرده بودم سپس برک ها و شاخه های خشکی را روی آن میریخت و با کمک میله فلزی که به چوب درازی بسته بود شعله های آتش را میزان می کرد تا گوشت شکار را که از شاخه ای آویزان بود کباب کند هنگام این کار بسیار مراقب بود زیرا با کوچک ترین سهلنگاری درختان آتش می گرفت از همین رو اجاق را زیر درخت بلوط و نزدیک آبشار کار گذاشته بودیم تا اگر خطری پیش آمد بتوان با آب جویبار آتش را خاموش کرد. کوزیمو بخشی از گوشت شکار خود را می‌خورد و بازمانده را به روستاییان می‌داد و از آنان میوه و سبزی می‌گرفت. در نتیجه خوراکش خوب بود و نیازی نداشت که از خانه چیزی بخواهد. روزی با خبر شدیم که هر بامداد شیر تازه می‌خورد. با ماده بوزی دوست شده بود که هر روز صبح به پای درخت زیتونی می رفت و پاهای پسین خود را به تنه درخت تکیه می داد و بالا می گرفت. کوزیما با سطل کوچکی خود را به شاخهی در چند وجبی زمین می رسند و بزرا می دوشید. همین رابطه را با یک مرغ خانگی نیز داشت. در گودی تنه درختی لانه پنهانی ساخته بود و مرغ یک روز در میان به آنجا می رفت و برایش تخمی می گذاشت. کزیم تخم مرغ را با سوزن سوراخ می کرد و آن را می مکید. و اما چگونه دست به آب می رسند. در آغاز توجهی به این مسئله نداشت و هر کجا که پیش می آمد خود را آسوده می کرد. اما بعدها به ناپسندیدگی این کار پی برد. از این رو به جست و جو پرداخت و در جای پرت و دور افتاده ای از کناری رودخانه ای به نام گهاب درخت توسکایی پیدا کرد که یکی از شاخه هایش روی رودخانه کشیده شده بود. و می به راحتی روی آن نشست. گهاب رودخانی تند و گلالود بود که از میان نیزارها می و گنداب روستاها و شهرهای دور و بر به آن میریخت. بله، کوزیم و دوروندو آدم متمدنی بود که هم به خود و هم به دیگران احترام میگذاشت. با این همه، زندگی یک شکارگر بدون برخورداری از کمک سگ چندان راحت نیست. البته من بودم و کبکا باسترک و بلدرشینی را که برادرم در حوازده بود. و یا روباهی را که پس از یک شب کمین کردن، سرانجام در پس بوتها قافل گیر کرده بود، جمع می کردم و برایش می بردم. اما من به ندرت می توانستم از خانه بگریزم و خودم را به او برسانم. گرفتاریم بسیار بود. نزدیک درس می خاندم. درسهایم را باید حاضر می کردم. به کلیسا می رفتم. باید با پدر و مادرم قضا می خوردم. هزار و یک وظیفه خانوادگی داشتم که باید به آنها عمل می کردن. زیرا ای بود که پیاپی به گوشم می خورد و به نظرم کاملا منطقی می رسید. یک بازگر برای هر ای بس است. و این جمله بر سراسر زندگی من اثر گذاشت. باری، کزیمو تقریبا همیشه تنها به شکار می ره. و برای برداشتن شکارهایی که زده بود از ابزارهایی چون نخ و چنگک و قلاب قل استفاده می کرد که ماهیگیران به کار می گیرند. اما همیشه نمیتوانست به شکار خود دست یابد و چه بسیار بلدرچینهایی را که در لابلای می میماند و میگندید و خوراک مورچه می‌شد این که تنها درباره وظیفه رفتن و آوردن شکار سخن میگویم، به این خاطر است که در آن زمان کوزیمو تنها به شکار کمینگاهی می‌پرد و چندین ساعت روز و گاهی سراسر یک شب را در گوشه‌ای منتظر ماند تا باسترکی روی درختی بنشیند یا خرگوشی وحشی در میان چمنزاری پدیدار شود. گاهی نیز در جستجوی شکار پرسه میزد و آواز پرندگان را دنبال می کرد یا می گوشید گذرگاه جانوران چارپا را پیدا کند. هر بار که صدای او او سگ‌های شکاری را به دنبال خرگوشی یا روباهی میشنید میدانست که باید خودش را کنار بکشد. آن شکار از آن شکارگر تنهایی چون او نبود. از آنجا که پایبند آداب و مقررات همگانی بود، هرگز تفنگ خود را به سوی شکاری که های شکارگر دیگری دنبالش می کردند، نشانه نمی رفت. حتی هنگامی که او نخستین کسی بود که از فراز جایگاه دیدهبانی بی همانندش آن شکار را دیده بود و بهتر از هر کسی می توانست آن را نشانه رود. در این حال، منتظر شکارگر می ماند که نفس زنان و گوش به زنگ از راه می رسید و نگاهش به هر سود دوان بود و کوزیمو به او نشان میداد که شکار از کدام سو رفته است. روزی چشمش به لکه سرخی افتاد که میان اللف ها میدوید. روباهی با سبیل آخته بود که از ترس نفس نفس میزد. از میان چمزار گذشت و لایه بوته های سرخ خلنگ پنهان شد. پشت سر او، دسته سکهای شکاری او اوکنان از راه رسیدند، به تاخت می‌آمدند. زمین را بو میکشیدند دوباره رده پای روباه را گم کردند و به راه دیگری رفتند. پس از آنکه آنها دور شدند، صدای خشخشی از میان علف‌ها به گوش رسید و سگی پیدا شد که جست و خیزش بیشتر به ماهی میمانست گویی دلفینی در چمنزار شنا می کرد و تنها پوزه و گوشهایش بیرون بود. پوزه که از پوزه ی دیگر تیزتر و گوشهایی که از مال دیگر سکها ویخته بود. پشتش به راستی به پشت جانوری دریایی می چنان پیش می‌آمد که انگار به پا بالک داشت و شنا می کرد. پاهایش دیده نمی‌شد و تنش بسیار دراز بود. سرانجام از لابلای علف بیرون آمد. یک سگ پاکوتاه بود. چونین می نمود که همراه دسته ی بوده و از آنها عقب افتاده است بسیار جوان و تقریبا طوله بود. در این حال او او یه دسته سگها حالتی به خود گرفت که خبر از سرخوردگی آنها میداد. گویا رد پای روباه را گم کرده بودند و دستهشان پراکنده شده بود. هر کدام از سگها به پیروی از شم خود در میان بوته های جاروی یک فضای باز بی درخت جستجو میکردند. بی‌تابانه میکوشیدند رد بویی را که گم کرده بودند پیدا کنند و دوباره به دنبال شکار بدارند. شور و شتابشان فروکش کرده بود و حتی دوست از آنها پایشان را کنار سنگی بلند می‌کردند تا بشاشند. در نتیجه سگ پاکوتاه توانست نفس زنان و و کنان خود را به آنها برساند و با رسیدن به آنها حالتی پیروزمندانه به خود گرفت که هیچ مناسبتی نداشت. همچنین بی هیچ مناسبتی خیر سرانه او او سرداد و به برانگیختن سکهای دیگر پرداخت. سگ های شکاری قرغر می کردند و برای یک لحظه جست شکار را از یاد بردند ایستادند و پوزه هایشان را از هم باز کردند تا سگ پاکوتاه را به دندان بگزند. اما دوباره به یاد شکار افتادند و دور شدند سگ پاکوتاه بی هدف پرسه میزد و کزییم او را دنبال میکرد سگ همچنان که بینیاش را رو به هوا گرفته بود پسرک بالای درخت را دید و برایش د تکان کوزیما مطمئن بود که روباه در همان نزدیکی ها پنهان است. دسته سگ ها پراکنده شده بود. گهگاه صدایشان از بالای پشته های نزدیک شنیده میشد که بیدلیل پارس می کردند و شکارگران با فریادهایشان آنها را میدواندند دواندند. به سگ پاکوتاه گفت برو برو بگرد. سگ جوان به شتاب به جستجو پرداخت و همچنان که این سو و آن سو را بو می کشید گهگاه نگاهی نیز برو! برو! کزیما دیگر سگ را نمیدید اما شنید که بوته هایی به هم خورد و ناگهان او سگ بالا گرفت. روباه را پیدا کرده و از نهانگاهش بیرون توانده بود. روباه با شتاب از میان چمنزار گذشت. آیا می توان روباهی را که سگ شکارگر دیگری از نهانگاه بیرون کشیده است با تیر زد؟ کزیما به خود اجازه نداد که روباه را بزند. سگ پاکوتا روبه سوی او برگردند و نگاهی سرخورده به او انداخت. نگاه سگی که از بازی آدمی چیزی در نمیابند. سپس دوباره به دنبال کردن روباه پرداخت یک دور روباه را دواند و دوباره هر دو از راه رسیدند. آیا کازیما باید شلیک میکرد یا نه؟ شلیک نکرد. سگ نگاهی درد به سوی او انداخت. دیگر او او نمی کرد. زبانش از گوشهایش آویخته تر بود دیگر توانی برایش نمانده بود اما همچنان میدوید. کار او دسته سکها و شکارگران را سردرگم کرده بود پیرمردی با یک تفنگ شمخال سنگین در کور راه پدیدار شد کزیما از او پرسید آی این سگ پاکوتا مال شماست؟ پیرمرد با کش خلقی گفت "میخواستم سر به تن تو وان سگ نباشد به دیافه ما میاید که با سگ پاکوتا به شکار برویم؟ کزیمو که همچنان می میخواست. پای بند آداب باشد پرسید. پس من می توانم شکاری را که او پیدا می کند بزنم؟ پیرمرد گفت. هر غلطی دلت می بکن. و دور شد. سگ پاکوتا روباه را برگرداند. کزیمو نشانه رفت و به هدف زد. دیگر دارای سگی شده بود. او را اپتیموس مکسیموس نامید. اپتیموس مکسیموس سگی گم شده بود که گویا تنها به خاطر شور جوانی با دسته سگهای شکاری همراهی میکرد. از کجا می آمد؟ به دنبال او رفت تا این را بداند. سگ همچنان که شکم به زمین میساید پیش میرفت. و از پستی و بلندی ها میگذشت و گهگاه نگاهی به پسرک بالای درختان میانداخت. تا مطمئن شود که او دنبالش می کنه. راهی که می رفت آنچنان ناشناخته بود که کزیمو در آغاز مقصد او را در نیافت. اما هنگامی که فهمید او به کجا می رود دلش به تپش افتاد به باغ ریوالونده رسیده بودند. درها و پنجره های ویلا بسته بود. تنها آفتابگیر پنجره کوچکی از بالاخانه باز بود. و با باد تکان می باغ به حال خود رها شده بود. و بیش از هر زمان دیگری به جنگلی از دنیایی دیگر میمانست. مانه است. باخچه و راهروهای میان آنها پوشیده از علف هرز و بوته های خود رو بود. اپتیموس ماکسیموس از لابلای آنها میگذشت و شادمانه پروانه ها را دنبال میکرد. و چنان می نمود که در خانه خودش است در میان چند بوته ناپدید شد و با تک نواری که به دهان گرفته بود برگشت. دل کازیمو بیشتر از پیش تپ این چیز اپتیموس مکسیموس؟ مال است؟ بگو. سگ دو را تکان میداد. بده اپتیموس مکسیموس، بده. کوزیمو خود را به شاخه‌ای در نزدیکی زمین رساند و آن تکه پارچه رنگ پریده را که بیشک زمانی آرایه گیسوان ویولتا بود از دهان سگ گرفت. گویی به یاد صحنه افتاد که دخترک موبور سبدی در دست داشت. و اپتیموس مکسیموس که هنوز طوله یک بود و تازه به او داده بودندش از سبد بیرون می آمد. باز بگرد. بگرد. سگ به میان نیزار رفت و با یاد بودهای دیگری برگشت. یک تنابه بازی، تکه از یک باد بادک، یک باد زن. برادرم خود را به نوک بلندترین درخت باغ رساند و روی تنی آن، با شمشیر نام ویولتا و کزیمو را کند. سپس زیر آنها نام اپتیموس ماکسیموس سگ پاکوتا را نیز کند. میدانست که این کارش دخترک را خوش خواهد آمد. هرچند که شاید او نام دیگری روی سگ گذاشته بود. از آن روز به بعد هر کجا که کزیمو را بالای درختی می دیدیم می که اپتیموس ماکسیموس پای همان درخت می پلکد. کوزیمو شیوه جستجو و یافتن و آوردن شکار یعنی همه ی آنچه را که یک سگ شکاری باید بداند به او آموخته بود. جانوری در جنگل نبود که با هم شکار نکرده باشند. برای آنکه شکار را به دست کوزیمو بدهد تا آنجا که می روی دو پای پسینش بلند می شد. کوزیمو خود را به او می رسند و خرگوش یا تیهوی را که زده بود از دهانش می و دستی به نوازش به سرش می کشی. از این بیشتر نمی توانستند به هم نزدیک شوند. اما میان پسرک بالای شاخه ها و سگی که روی زمین میپرکید رابطه و گفتگوی پیگیری برقرار بود که با پارس های سگ و آواها و واجه های تکهجایی پسرک بیان میشد. و این رابطه چنان بود که نیاز طبیعی سگ به انسان و انسان به سگ را همواره برآورده می کرد. و با آنکه هم کازی ما با دیگر انسان ها فرق داشت و هم آن سگ به هیچ سگ دیگری نمیمانست با هم زندگی خوشی داشتن